Bulbuli e Muhammad dar-e siyad-e Umar shir-e duran te gubar-an dushman-e shehr Kufajar khir shah-i an dilavar roshni basar sunnat asham chun tashdar-e ahl-e sunnat asham chunqamar در دفاع از حرمت اصحاب چکوی او سوار در دلش در سیندار جز بخشم کردگار در دلش در سیندار جز بخشم کردگار بنده زندان کتابان زمانی مردان شود بند زندان که تواند مانی مردان شواد بیشتر محبوب و ده هر کی در زندان شواد بیشتر محبوب گرد هر کی در زندان شواد آفیز پاک حریم عایش خرس است Afi Zei Pake Harimi Ayesheh Hershahias, Abdul Ali Manchuri Azeh Hershahias, Molawi Abdul Ali Manchuri Azeh Hershahias. جان نصارش اهل سنت بیگو نسل جوان دوستش دارن دویزاران مرتبه بر طرز جان دوستش دارن دویزاران مرتبه بر طرز جان عذر و میخواهم دلا برکو تهی از ما شده وزر می خواهم دلاور کتهی از ما شده دست ما از دیدنت ای مهربان کتا شده دست ما از دیدنت ای مهربان کتا شده Arizudar imki ekbar di gar chun bol bolan bishnavim haku ye trait bi bmehraban bishnavim haku Az Omar mira darin obu atra aziz tigburani idalat ba na wa yat gash te tiz tigburani idalat ba na wa yat gash te az jamalid al rabayat az, az. hamchuti jani zar nas az همچو تی جانی نزد تو در منده از ای که هستی عاشق فروق اعظم در سخن در عمل گلگو بگیر از بلبول شیرین سخن خیر شاهی ای دل آور چون که بر من بر روی جان ما را بار دیگر نوری ایمان میدحی جان ما را بار دیگر نوری ایمان میدحی خیر شاهی ای دل آور کہ من بر مری روی کہ دوباره زاہدان دیدار راہبر می روی که که دوباره زاهی دان دیدار ره بر خیر شاهی که دیگر ختم بخاری می روی دیدم را باز است و تو داری می روی kay dubaare naghme az iqbal ilahuri zani kay dubaare naghme az iqbal ilahuri zani kar sat jam-e maara halaye noori zani kar sat jam zani Äskeen, äskeen, äskeen, äskeen, äskeen, äskeen, äskeen, äskeen, äskeen, äskeen, äskeen, äskeen, äskeen, äskeen, äskeen, äskeen, تاجدار اهل سنت چهره شمشون قمر تاجدار اهل سنت چهره شمشون قمر با صدای زین العابدینه کوپدانی با همکاری خانم فاطمه امیری